سلام عرض می کنم خدمت مهمان گرامی عزیز خیلی خوش اومده به این گفتگو و خیلی هم ازش تشکر می کنم با وجود اینکه این که مهمان عزیزمون وقت نداشت ولی تشریف آورد تا باهاش گفتگو کنیم خب مریم عزیز سلام سلام هاتف مرسی ممنونم ممنونم که وبلاگی منو می خونید ممنونم که وبلاگ من جز وبلاگ های محبوب تو هسته من نمیدم چرا استرس دارم و خیلی ژست آدم های مهم رو به خودم گرفتم تکیه دادم به سرمنین خیلی خوبه اشکال نداره فقط یکم صدایت خفه است که فکر میکنم ایراد از میکروفون باشه امیدوارم شنوندگان عزیز این رو ما ببخشن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 اگر نراحتی خب سعی کن راحت باشی استرس هم اصلا نداشته یه گفتگوی کاملا ساده به مناسبت روز وبلاگ نویسیه نه من راحت هم ساعت دارم خیلی جالب بین این همه وبلاگ نویس خبباً چرا من استرس به خاطر صدامه میترسم از دست بودم پشیمون بشم باشه نه را زیست هر کسی برای خودش حوادار داره و به نظر من اصلا استرس نداشته باش. خداوند یکیش که خودم باشم هستم در خدمتت نگران از دست دادن امادات نباش. این به خاطر صداد نیست که ما بریم. و فکر می‌کنم صدای منم صدای تو بدتره. پس از این جهت راحت باش. بعدم صدای تو خیلی بد نیست، خیلی هم خوبه و صدای چیزی که آدم خوب خودش انتخاب نکرده، بلکه ژنتیک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 ولی اصلا مهم نیست چون دوباره اعتماد به نفسمو به دست آوردم خیلی خوبه که اعتماد به رو به دست آوردی اصلا کلا بعضی عاشقینا دارن که ایراد بگیرن شما هر کاری بکنین ایرادشون رو میگیرن پس یاد بهشون توجه نکن و اینکه ما گوینده رادیو نیستیم ما صرفاً یه ساده‌ایم و هر کسی یه صدایی داره و خب این محتواس که در از خیلی مهمه و اصلاً صدا به نظر من اصلا مهم نیست آدم میتونه یه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 مهمه ولی خب ایراد دیگه بالاخره میگیرن همیشه تا زمانی که یه کاری هست نقدش هست مسخره کردنم هست توهین کردنم هست تیک انداختنم هم هست همیشه باید همیشه هست بس پوست پوسکلوف باشی وقتی یه قراره کاری بکنی کلا نباید زیاد دقت توجه بکنی به نظر من خیلی خوبه و خیلی افتخار دادی که داری با هم گفتگو می‌کنی و گپ می‌زنی البته نظر همه هم محترمه ولی خب فکر می‌کنم تو کاری رو بکن که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 و اگر خودت میگی نیستی خب پس حتما نیستی من نمیخوام نظر خودم رو تو گفتگو تحمیل کنم خب به بگو ببراگ نویستیر از چه سالی شروع کردی چه سالی بود چند ساله می نویسی و از حال و هوان و تفکر توی اون روزا برمون بگو من از زمستون 91 با داداشم اومدیم یک در واقع توی بلاکفا اون موقع توی بلاکفا یه ویبلاک داشتیم مشترکن بین دوتامون که زیر نظر یه مؤسسه فرهنگی بود مؤسسه نموری مجله بود مجلهشم واقعا یادم نیست سنشی بود چفیه بود سنگر یادم نیست مورد شهدا بود ما با اونا کار میکردیم با اونا کار میکردیم بعد تا که من دیگه افتادم توی کنکور و اینها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 نود یک به بیان اومدم ولی زیاد ننوشتم بیشتر خوندم یعنی دم... نه دنبال به معنای واقعی ولی گذری می‌خوندم. پرو خدا جدی برو باورم نمیشه دیگه برحال باورت بشه به نظر من به تده دیگه عزیز معتبر هرچی که هست ارزشمند ویبلاغ نسبت به هم مقایسه نمیشن چون قابل قیاس نیستن این بگیر اینقدر دوست دارم دنبال کنند های قدیمی پیدا کنم که هیچ کدومشون نیستن هیچ کدومشون در نیستن همشون رفتن با دو تاشون تو دنیای واقعی در ارتباط دارم یعنی شماره ازشون داشتم ولی گمشون کردم حاسفه سر جنگ داری خب معلومه من ویبلاگ همون دوست دارم ولی میگم خیلی وبلاگ نیستای خفندتری بود من اصلا خودمون بلاگر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 هیچ کسی از هیچ کسی برتر نیست نظر من اینه وبلاگ هر کسی برای خودش خفنه اینکه بگیم های خفنی وجود دارن بهتر از من بدتر از من این اصلا تعریفای درستی نیست هر وبلاگی برای خودش یه ارزش خاصه خودشو داره اصلا اینطوری حرفا نباید اصلا توی وبلاگ مطرح بشه چون هر کسی مخاطب و مخاطب خودشو داره مثلا اینکه ما بگیم گل روز خفن گل مثلا محمدی پوینت تره یا گل یاس بالاتره اصلا هر گلی بوی داره اهمیشه مقایسش، کرد من دیگه تو همه برنامه اینو گفتم دیگه هی تکرارش نمی‌کنن. کاملاً موافقم. کنان اصلا بحث اینکه که کی بهتر کی بدتر اصلاً حرف درستی نیست. ولی خب متأسفانه رواج داره. علاته اینکه این روزا وبلاگ و من مشکل دارن و به سمیمیت و به سمیمیت گذاشته هم نیستن. همینه. بیشتر خودشونو به هم میبینند در صورتی که نباید ببینن. و محیط دوستانه‌ای که مثلا من سال 85 و 86 89 اینا داشتم دیگه نیست الان. راست گفتید چه سالی شروع کردی من 13 تیر ماه 92 اسباب کشی کردم از ولایفا به بیان و دیگه از باقر جدا شدم اون راه خودش و رفت من راه خودمو ولی شروع این که با محیطی به اسم ویبلای آشنا بشم زمستون 91 بود ببین به نظر من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 دقیقا درسته من دقیقا همین که تو گفتی رو دارم از وبلاگ نویسی و فکر میکنم که هر کسی که می نویس تو وبلاگ وبلاگ نوشه بله کاملا با موافقم بله بله و اگهنه که ادعای فهم و شعورشون میشهگه یکی کمم از این فاازاتشون کم بکنن دنیای وبلاگ نوی دنیای بهتر میش برای همه.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 موضوع بر سر بلاغ بهتر و بدتر بودن نیست کاملا درست موافقم اگر بخواید بلاغیت رو نقد کنی چی میگی بهش؟ فکر میکنی ایدئالت رو داری توی بلاغیت یا نه؟ زمانی که من شروع کردم به نوشتن خاطراتم و روزمرگی هم، هیچ ایدئالی تو ذهنم نداشتم و عموما بر خودم می نوشتم به خاطر همون گفتم که حافظم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 به خاطر همین شامل مثلا یکی اول وارد وبلاگ من بشه فکر کنه من چه دختره حالا بی ادب و گستاخ و اینطوری هستم دست که من تو دنیای واقعی اینطوری نیستم. این دنیا جایی بود برای اینکه من بیام خود واقعیمو نشون بدم چون تو دنیای واقعی همش نمیذاشتن خودم باشم. بعضی وقتا احساس می‌کردم این این پوست هم چقدر لوسه. یکی به خود میگه این دختر چقدر لوسه. درست مثلا اصلا دوست ندارم همچین حس رو خوانندم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 ادب رایت نکرده بودم وگرنه چیز خاصی نبوده حالت برای من مهمه مخاطبم وقتی میخونه وبلاگ منو، از من چه تصویری بهنش شکل میگیرن نمیخوام این تصویری تصویر بد باشه یه تصویری باشه که من نیستم واقعا بیشتر چه موضوع ویبلاغ هایی رو دنبال می‌کنی؟ هیچ چیز موضوع خاصی نیست که بگم مثلا در مورد این موضوع باشن دنبالش رو میکنم کلن من یه از خوشم بیاد از یه پست ببین ان یه پست ببینم خوشم بیاد دنبال می کنم وبلاگ بیشتر آدمهایی رو دنبال میکنم که خلاقانه می برای کل خیلی خوبه. یادت میاد تو تایم هایی که وبلاگم رو شروع کردی حالا هوا تفکر چطوری بود ازا وبلاگ رو چی میدیدی؟ احساس میکردم یک مسئولیت بسیار سنگین بر شانه های من... و من ارشاد مؤمنین مؤمنات رو عهده دارم و خب خیلی تو این فاز بودم دیگه چون تو اون مجلم کار میکردیم کار نمیکردیم ولی با شما همکاری میکردیم به خاطر داداشم فضایی که داداشم توش بود دیگه بعدمون دیگه دیدیم نه بابا همچین چیز وزیفه یه ما نداریم و این چی دیگه برای خود باید دل خودمو نمیشین هم، بگو تخت ترین اتفاقی که تو دنیای وبلاگ و وبلاگ نمیسی برات افتاده چیه؟ بذار این ترین اتفاق برای خودم بمونه ام. حالا دیگه تلخم نیست و ترجیح میگم میدم نگم ام. خب شنوندگان عزیز متاسفانه میحوار برنامه‌مون زیاد وقت نداره برای گفتگو بخاطر ما خیلی از سوالا رو برداشتیم و باهاش فقط در حد اینکه بتونیم یه گفتگو داشته باشیم گفتگو کردیم تقصیر منم شد چون من یه ی نیده به سرم رسید و خب عجله داشتم بخواستم تا قبل محرم برسونم و خب تایم نبود و مریم عزیز متاسفانه تایم نداشت و ما خیلی از سوالا رو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 در واقع صحبت کردن با گوش گذاشتم و رفتم الانم که دارم میرم دوباره همین واقعا وقت ندارم نمیدونم چرا بر همین اوصای میکنم البته اگه کوتاهه در نهایت خیلی ممنونم که باز وقتت رو به ما دادی خب ما سوالات رد میشیم ازش و میرسیم به سوالات اصلی که ازت بپرسم منی هم هدفی برای وبلاگت داری؟ قصد داری تغییر فضا بدی؟ کلان اصلا برنامت برای وبلاگت چیه؟ خیلی دوست دارم خوشگلش کنم دوست دارم یه بگران بیام ولی من نمیدونم یعنی بلد میستم داداشم هم کمکم نمیکنه فقط تو همین فضای فیزیکیه مثلا وبلاگم میخوام تغییر بدم فیزیکی بهش میدن؟ نمیدونم و اینکه برنامه برای وبلاگم قصد دارم بنویسم بنویسم بنویسم فکر نکنم که چیزی به جلو من بگیرد نوشتن در وبلاگ مگه اینکه ولش کن و همین دیگه و گرنه ای و هدفی برای وبلاگم واقعا ندارم. وبلاگم یه جایی که من میتونم.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 ولی من اینقدر ندارم ندارم چی بگم خب وقتی طالبش فکر نکردم باشه اشکال نداره منم امیدوارم اون کسایی که دارن این رفتار زشت دومی میکنن به قولتو برن اونجایی که جاشه و محیط رو ترک کنن یا هم حداقل ترک نکنن داشته باشیم ازشون استفاده کنیم و رفتارشون رو عوض کنن اهل کتاب هستی اه چه کتاب یا کتاب رو دوست داری؟ یعنی کتاب خونت کدوم کتاب که اگه کسی قرضش بخواد به کسی قرض نمیدی؟ نمیدونم اهل کتاب هستم یا نه ولی دوست دارم کتاب خوندن و, و سعی میکنم حداقل اقل دو, دو ماه یک بار یه مبلغ مثلا حدودا پنجاه تا سی هزار تومن رو برای کتاب بذارم کنار ندونم کمه ولی سیم رو میکنم توی کتاب خونم کتابای زیادی هستش که دوستشون دارم کتابای هدیه زیادی وجود داره از دایم از بابام از آرسه که خب اینا رو حاضر نیستم به بدم اما بخوام خودم اون باشه که حالا نخوام کسی بدم مثلا دزیره من کتاب دزیرم رو به هیچگی نمیدم البته تا الان به دو نفر دادم و وره یعنی کتاب است که سخت دل میکنم ازش و بزره الان دارم کتاب ها نگاه میکنم پس ببینم کدوم یکی شدیگه کتاب ها دوست دارم واقعا دوست دارم و خیلی مثلا مثلا کتاب الان این نحسی ستاره های بخت ما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 Thank <laughs> you.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 بچه ها باورت میشه دست من من نگاه شناس آدم شناس خوبی هم منو میگرفتن میبوردن مثلا حالا پسر رفت اون بر بود نشونم میگفتم مثلا این دوست تو به این چطور آدمیه باورت میشه و من میگفتم این اون در اومد عین اون چیزی که میگفتم بالاخره این هم یکی از استعداده های درونی منه دیگه به لحاظ اطلاعاتی راست میگم اسمم واقعا اسممه چه میدونم سند که میگم واقعیه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 مخاطبان جالب باشه و خیلی دوست دارم بدونن که چرا من حساسم و نمیگم اینو راستش من روزی که همه کارهام اوکی شد و تونستم دقال معرف از ایران خارج بشم رفتم یه دونه ویبلاک ساختم بایی دامین آر. و کاملا یک زندگی شیشه ای اونجا درست کردم و هر اتفاقاتی می افتاد و هر احساساتی که داشتم و می نوشتم از مهمونی که خالم گرفته بود تا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 حساش و مشکلات و اینا رو نوشتم بعد نوشتم که من دارم میرم و اینجور چیزا و سلام اروپا و اینا رو نوشتم و کامل بعد حتی مثلا این پست دادم سلام اروپا سلام م -م. یا سلام م -م. که اسمش کشوری که نمیگم بعد نوشتم بعد یه های اتفاقی که افتاد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 سوجویی و جویی و راجب اینجور چیزابت اونجا بود که خیلی دلم شکست و وبراغی که فقط سه ماه بود بازش کرده بودم و کامل داشتم توش می نوشتم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 آره دقیقاً من نمیدونم حالا عقدهی درونی بوده اسمش چی بود مهم نیست مهم اینه که این اتفاق افتاد ان شاء الله خوشواله تلفن قانونو پای من خیلی کنم یه زمانی برم اونور میفهمم آره نه میفهمم جدی هات میفهمم چی میگی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 یعنی یک ویدیوهای خیلی خوب درست کردم براش اصلا یه سیستم خیلی عالی درست کردم چالش های کتاب خونی ولی خیلی زحمت کشیدم ولی باز اونم دیده ننش و باز هم نظرات منفی گرفتم و بازدی سر آدمایی می اومدن بام و تند خونی می کردم. بهم می گفتفتم شغور رو ندارم. اونجا هم خیلی اذیت شدم و با اونجا رو بستم و دیگه ننوشتم تا دو سال تا آره آره, آره،, آره، فکر می کنمم اونو بستم بعد دیگه.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 من میخوام تلگرام نسب کنم تلگرام ندارم بچه های ویبلاگ از من تلگرام میخوان که من با شماره رفتم خریدم براش فرستادم، درست کردم تلگرامشو بعد یه مدتی اون مینوشت من هم یه سری پوستایی رو براش میفرستادم که توی کوچه دوازده هم این رو منتشر میکرد من هم قالبشو خیلی دوست داشتم ویبشو خیلی دوست داشتم و دوست داشتم خب مطالبم داخلش منتشر بشه من میفرستادم.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 رفتنش مسمم بشه و گفتش من دیگه نمی نویسم بعد خیلی از دنیای ویبراک نویسی و خالخان با جیبازی هاش و گفت آدم های توش زیادن و خیلی شاکی بود از همه و گفت حالم به هم می و دیگه نمی خوام بنویسم و کلن رفت و بعد من ازش ناراحتی داشتم دیگه ما منم ناراحت کردم، و منم ظاهرن اون رو ناراحت کردم و دیگه کلن خبری هم ازش ندارم خیلی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 هاستی رو دادم که توی سیروریه که من بتونم ازش ساب دامین بگیرم و اونو به بیان بست کنم یعنی بلاکداتاتف.کلیک 700 تومن پول هاست داره 60 تومن هر سال به بیان پول میدم که امکانه دامینو و اسکریپت و اینجور رو برام فعال کنه و خود دامینم در حدود 156 تومن قیمتش هر سال باید پرداخت کنم مجموعا 760 تومن سد و میشه 850 و 910 و ده و ده هزار تون هر سال برای من هزینه داره بخاطر این حزینه سرسام آوره که من رو نگه داشته فعلا همین این به خاطر این هزینه است که من موندم نمیتونم هزینه رو به باد بدم نمیتونم من پس بدم و پولم رو بگیرم بخاطر این موندم دیگه انوز موندم در خدمت شما منظورم با موفقیت تحصیلاتت پشت سر بذاری یا حالا یا بعدا اگر اگه می‌خوای همون توی خوب داشته باش. سالی سوالی خیلی ممنونم از لطفت. سوالی که هست سه تا دیگه ازت نمیپرسم. و اینم بگم که من بخش تو برای این گذاشتم که یه قسمتی از هزینه‌ام بابت هزینه نگهداری هاتفتاد کلیک هزینه بشه. همین. خب سال بعدیم اینه که یه موسیقی یه موسیقی لطف کنی و شنوندگان این برنامه رو مهمون کنی که توی تیتراژ پایانیمون براش برای شنوندگان عزیزمون پخش بشه و این رو تو دعوتشون می‌کنی موزیک که که بشنبه اگر موزیک توی یه آلبوم خاصیه و فروش میده ما فقط پنجه سانیهش رو میتونیم پخش کنیم و اگر نیست به عنوان تیتراژ پایینی به صورت کامل پخش میکنیم به مخاطبان و خب این هدیه توئه و بگوی که چرا ما رو این موزیک این ما رو اه اه مهمون کردی با این موزیک و اینکه حست بهش چیه؟ یه هفته پیش آلبوم ابراهیم محسن چالش رو خریدم ولی هنوز به دستم نرسیده. همین صندوق تام ریسم پست و رسیده بود حظ همون یه 50 ثانیه رو میذاشتم. ولی متأسفانه چون نرسیده میرم میگم خن و باز میشه. مثلا از این ادا اون که با موزیک آروم بشم با موزیک. من مثلا حتی گوش دادن به موزیک هم حوصله میخوام برای گوش دادن به موزیک و از اینا دور افتادم. معلومه من برای گوش دادن به موزیک باید حوصله داشته باشم، باید حالشو داشته باشم. و اینکه اصلاً از ما نیستم که با موزیک آروم بشم من معنیم با سکوت آروم میشم یه جا با سکوت کامل باشه ولی دوست دارم موسیقو خیلی دوست دارم یه مدت تا خواستم برم ستار ستار رو یاد بگیرم زدنشو ولی خب نرفتم الان یک موزیک خیلی خفم برتون میفرستم حال کنی باش. آهنگ همیشه یکی هست از محمد موتمدی و خیلی آهنگ خفنیه چند وقت پیش بعد عملم حالم که خیلی بد بود و آراسه گفتم که برام چند تا موزیک بفز. این یکیشون بود که خیلی شدید از موقع با گوشش میدم به طوری که الان حالم دیگه باره ازش با هم میخوره ولی نه یعنی که خسته نشدم عجب که یک ماهو نیم مداوم دارم گوش میدم و خسته نشه. خیلی ممنونم امیدوارم شنوندگانمون دوست داشته باشن. توی این برنامه نمیدونم تو شانس توه، شانس منده نمیدونم. صدای جاروبرقی و صدای مته و برش و ماشین و انواع اقسام نویزا رو ما داشتیم. و متأسفانه اونا پزیره است شنوندگان عزیزم من معذرت میخوام ولی خیلی ممنونم که ما رو این موزیک بمون کردی و شنوندگان عزیز تو پایانی این موزیک رو میشتوام. و امیدوارم که دوستش داشته باشن. خب سال بعدی یعنی یکی مونده با آخری هم اونم اینه که اگر قرار بود جای من عوض بشه، تو با من گفتگو کنی و از من سوال بپرسی، چه سوالایی رو می‌پرسیدی؟ بین یک تا سه تا سوال بپرس. ولی من الان این سوالا رو نمی‌شتم. وقتی که خواستم پادکست رو منتشر کنم، می‌شتممشون و جوابش رو بهت میدم. که می‌تونی وقتی که پادکست منتشر شد جواب رو بشنوی.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 و سوال بعدیم اینه که به نظرت مریم تا کی می نویسه و به نظر آیا دنیای وبلاگ نویسی یه روزی کاملا بین میره یا نه همیشه تا آخر هست مریم می نویسه که می نویسه تا زمانی که دل و دماغ براش مونده باشه می نویسه و دنیای وبلاگ نویسی هست نه تا آخر هست فقط این ما مریم ها و حاتف ها و <تصفيق> مو هستیم که میریم ولی میاد هر روز به بلاگین‌های تری میاد که دیگه رسالت حفظ دنیای وبلاگینسی به دوش اوناست دیگه اینجوری نیست که از بین بره من فکر نمیکنم. ولی خب به خاطر اومدن شبکه‌های اجتماعی خیلی خفن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 واقعا یکی از جایی هست که نمیتونم تومش فقط ازش برم یکی بللا که هم صفحهگرامم. دوتاشون تکام بهت گفتم جلوتر که واقعا مثل خونه هستن اونمش و خونش رو ترک نمیکنه شاد بره جای دیگه ولی باز بر میگرده باز دلش بر خونش تنگ میشه و من به ادامه میدم اما هیچ وقت. هیچ وقت نخواستم هرفه ای بنویسم، نه وقتشو دارم نه استعدادشو دارم همین نوشتن عادی خودم چیزی که تو ذهنم میاد رو میارم روی حالا ورقه یا تایپ میکنم اینو ادامه میدم تا الان یکی از لذت هایی که از زندگیم بردن خوندن نویشت های خودم و نویشت های بقیه بود و کسی که دوستشون داشتن کسی که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 هر هم خود صدام نارفم و واقعا خودم کیف کردم ممنونم متشکرم و, و خدا نگه دارد. و ببخشید من یه چیز یه چیز بگم اینکه من معذرت میخوام هم به خاطر وقتم هم خاطر اینکه وسط با میرفتم میومم اذیتت می کردم عذ و اینکه خدا نگه <تصفيق>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 این شد که من شروع کردم سال هشت دو, دو, دو یا سه یادم دقیق نمیاد چه سالی بود اون و اینکه در مورد سوال بعدی هم بگم که آره دوباره این کارو میکردم دوباره تلاش میکردم و صد البته اگر اطلاعات الانمو داشتم و میدونستم قراره چی پیش بیاد بله زودتر می اومدم خیلی زودتر می اومدم خیلی زودتر می اومدم خیلی جواب ترخی بود ولی متاسفانه همینه من خیلی زودتر می اومدم متاسفانه زودتر خارج می شدم من عزیز این آخرین برنامه بود خیلی ممنونم که این تا برنامه ما رو همراهی کردید لطف کردید گوش گرامیتون رو به ما سپردید خیلی ازتون ممنونم من حاطف بودم در آدرس بلاک دات, دات کلیک و خیلی خوشحالم که تونستم به نه و این پروژه رو بگم و تمومش کنم از اینکه همراه هم بودید سپاس گذارم میریم که تیتراژ پایانی که مهمون عزیزمون بهتون هدیه کرده بود رو بشتویم ازتون خدافزی میکنم و شب و روزگارتون خوش سکوت دلت را به هم میزند سراغاز ویرانیت میشود کسی که کنارت قدم میزند کسی که کنارت ادام به پای گرم خودت که پیرا را گرفتن نرو به شب پرسه های پر از آرزو که در حسرت هم پا گرفتن نرو به احساس معصوم من تکی که دلت را به دست دلم که کردن بده به من جراته تکه کردن